زراره اومد یا مفضله حالا تردید از من ظراره مفضل و اینا از اصحاب ارزنده مام صاده اومد خدمت امام صادق علیه السلام است که اقا ظهور مهدی این اومد که خواهد بود تا زمان پیغمبر صحبت شده بود. اینا میدونستند دوازدهمه ای از این خانواده است و امام صادق صادف کنانون ششمه میخواستن روایات را رو از ائمه بگیرند نصف های بعد مطئیم خیلی حق به گردن ما دارد. اقا ظهور مهدی که خواهد بود. امام صادق فرمودن نکنه تو از اونایی که برای دنیای خودت میگی من این روایت اولین بار که برخورد کردم خیلی سال قبل نه خیلی دقت کردم متوجه نشو رفتم خدمتی که از اساتید قوییمون که در حدیث خیلی قویه گفتم استاد شما این حدیث ازش چی میفهمی تا حدیث رو براش خوندن همینشون گیجش شد دستان شده رو روز رو کرد حالش منقلب شد یه جوری گفتم چی شد گفت عجب هر. گفتم چطور گفت در روایات ما فصل داره بعدها رفتم دنبالشتم بعد روایات عجیبی داریم که کسانی که آرزوی ظهور حضرت رو میبرن چند است یه دسته آرزوی ظهور حضرت رو دارن برای اینکه یه عقده‌هایی براشون شده تا حضرت بیاد و عقدهای ما رو, رو دیگران خالی کنیم این برای حق نیست یه ایده انتظار ظهور حضرت رو دارن چون تصورشون اینه من یه حقی دارم شما حق من زایی کردهم همون زمان بیاد پدر شما دارد. دلش امام زمان نسوخته درش آره خودش سوخته که یه جوری پدر رقیبشو در بیاره منتظره که امام زمان بیاد پدر رقیبشو در بیاره یکی حالا مشکلات مالی زیادی پیدا کرده حقا میگه حقشو خوردن اونجور که شرایط اجتماعیش ایجاب کرده بهش توجه نکردن دیگه امام زمان بیاد ما جلوه کنیم ما جلوه کنیم امام داره به زراره میگه اینجوری نماشیدا اینا هنوز عفته جامعه است به اینجا رسید شده که شما مثلا وقتی دارید گریه می‌کنید، ناله میکنید، گریه و نالتون در این باشه، خدا یا من به اندازه فهم خودم درد اجتماعی رو میبینم، قصم میگیره، گای شبا خوابم نمیبره. چرا جامعه ما اینجوری شده؟ چرا جوانهای ما اینجوری برای امام زمان چه میگذارد؟ این نکتی خیلی زریفه، دیگه بحثم تمام. گفتن جناب اویس قرنی آشق پیغمبر. پیغ یعنی یه وقت من پیغمبرو دوست دارم که خیلی خوبه چون وقتی اومد مدینه ما یه مقداری مشکلات مالیمون حل شد. بالاخره قمسی معین کرد، زکاتی معین کرد، صدقاتی معین کرد. ما نونمون تو روغن افتاد دیگه. یه وقت میگه نه من رو دوست دارم ولی با باعث من شب گرسنه‌ام بخوابم. حویش از اینا پیغمبرو دوست دارم تو قرن یمن حالا. پیغمبر تو مدینه. است. مادرش اجازه نمی داد بیاد مدینه رو ببینه. چون مسلمان بود اجازه مادر هم شرط بود، خلاف نمیکرد. روزا می اومد سر راه یمن و مدینه مینشست اگه پیگی از مدینه میاد از اون از مدینه اومدی از پیغمبر چه خبر یه روز دید عشقو ببینید این مطلبو تقاضا دارم دقت کنید یه روز شخصی وقات گفت از مدینه میاد گفت بله گفت از پیغمبر چه خبر گفت جنگ احد بود دندان پیغمبر شکست گفت کدوم دندان پیغمبر بود گفت نمیدونم گفت این دندان نیست نشوندگات کجا میگی گفت به خدا چند هفته این دندان من درد گرفت. بعدها از پیغمبر مدینه اومدن دیدن همونه یعنی انقدر پیغمبر دوست داره که حالا به قول انروزیات تلپاتی و است ششم ارتباطات روحی دندان پیغمبر تو مدینه تو جنگ اوهد شکسته او تو قرن میگه من احساس میکنم این دندان و این اویس بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت مادر او امفی قرن از دنیا رفت دیگه آزاد بود محدودیت ندارش اومد مدینه اومد ملحق به تعمیر شد در جنگ صفینم شهید شد یه خاطره برخی مدنی ها برای اویس نقل کردن خوب دقت اوبیس نقل کردنی که یه روز پیغمبر به ما گفت در این جمع 5 6 نفر ده نفر بودیم هر کی هر حاجتی داره برآورده است بخواد یکی حاجت خواست اونش بزرگتر بشه، یکی حاجت خواست برای پسر زن خوبی گیر بیاد، یکی حاجت خواست برای خودش زن خوبی گیر بیاد، حاجت توی معدوده بود، تخفیف تمام شد، پیغمبر فرمود تا خواستید، گفت بله، گفت یکیتون نخواستید که اسلام پیروز بشه. اوبیس برگشت گفت به خدا قسم من بودم می گفتم یا رسول الله دام کنم عمر تو آخر زمان ادامه بیاور. معرفت رو ببینی؟ در روایات ما داره در آخر الزمان زمان دعاها از بار معنوی خالی می شود جنبه های دونیوی مادی پیدا می کند و جنبه های مادی رنگ معنوی به خود می گیرد. با اینکه اولیای الهی میکوشند رنگ معنویشونم برای اینکه تظاهر نشه ظاهرا دنیوی نشون بدن قطعا